به نام خالق هستی بخش و رزق دهنده ای بی بیکران نوید هستم نوید آرین متخصص و مشاور در امور مالی و همانطور همانطوری که در بحث قبل صحبت کردیم در دو جلسه اول صحبت کردیم راجع به سرنوشت و در حقت در دستگیری سرنوشت امروز با بحث تعاملات اجتماعی یعنی تعارض و تعامل اجتماعی در تأثیران در سرنویشت خب ببینید ما انسان هستیم و هر انسان ناگزیر هست در یک محیط زندگی بکنه که اون محیط اسمش اجتماع هست و در این اجتماعی که ما زندگی میکنیم افراد و خانواده و در حقیقت توده های از افکار با هم همجوش هستن و زندگی می بنا بنابراین خیلی از افرادی که در یک جامعه زندگی میکنند امکان دارن که با ما همسو و همرنگ نباشه با ما مخ... با ما مخالف باشه با عقیده ای ما با استایل و سبک زندگی ما با استایل و سبک صحبت ما با شخصیت ما با خیلی از مواردی که ما داریم امکان داره جامعهای که ما در آن زندگی میکنیم جا چ جامعه که صحبت از جامعه هست چه جامعها در حد کوچیک اقوام و چی در حد خانواده خود فرد و اقوام نزدیک او فرد یا او خانواده و چه جامعه بزرگتر که عبارت از یک کشور هست خب ما در چنین ای که با تعارضها همیشه مواجه هستیم و بایدم باشیم چون تعارضها ها معمولا انسانها را قوی تر می کنه انسانها را حشیارتر می سازه برای تصمیم گیری اگر ما قرار باشه از تعارض و از نهنجاری اجتماعی درس بگیریم برای تصمیم گیری در آینده به ما کمک می که ما حشیارانه و بهتر و متبرانه تصمیم بگیریم در اموری که در صد درائی ما قرار میگیره ولی ما چون دوست نداریم که سرنویشمان را جامعه رقم بزنه اجتماع رقم بزنه و یا شرایطی که در اجتماع تحمل شده به ما تحمل شود. پس کار باید بکنیم که تا سرنوشتمون را اون که خودمان دوست داریم، به دست بگیریم و آنطوری که خودمان دوست داریم زندگی بکنیم. خب، باید دایره افرادی که قرار است ما با اونها در تعامل باشیم تعریف بکنیم. قرار است ما با تمام افراد جامعه ارتباط داشته باشیم و ارتباط ارتباط حسنه باشه. اصلا قرار بر چنین چیزی نیست. ما در جامعه زندگی می‌کنیم کافی است که ما سه تا پنج نفر از دوستان نزدیک خودمان را داشته باشیم برای و این داشتن سه تا پنج نفر یا خانواده برای که ما در یک اجتماع بتانیم راحتتر زندگی بکنیم به یک ارتباط صادقانه نیازمند هست ارتباط در بحث ارتباط انشاءالله این موضوع رو باز خواهیم کرد که ارتباط صادقانه و ارتباط و ارتباط های غیر صادقانه یا ارتباط های مغرزانه چ نوع ارتباط هستند هستن ولی اینجا به همین قدر بسنده می کنیم که ارتباط صادقانه ارتباطی است که تو طرف را خانواده را دوست داری به دلیلی که آنها تو را دوست دارن تو آنها را دوست داری چون فکر می آنها شباعت های با شخصیت تو با سبک استایل زندگی تو داره در نتیجه این یک ارتباط صادقانه و دو طرف هم میتونه باشه ولی ارتباط های مغرزانه ارتباط های هست که معمولا بر اساس منافع تعریف میشه فرد با فرد ارتباط میگیره به خاطر منافع مالی به خاطر منافع مادی به خاطر منافع اجتماعی به خاطر منافع سیاسی و اجتماعی و امثال اینها که خب این ارتباط ها در جامعه ما فراوان هست مزایا و درعقت معایبان را هم در انشاءالله در بحث خود ارتباط خدمت شما بیان میکنیم خوب پس ما باید دایره ای افراد که با اونها در ارتباط هستیم تعریف بکنیم که این افراد کیا, کیا هستند و چه دایره ای رو باید شامل بشونم ما افراد رو در, در جامعه ای که زندگی می کنیم گاه اوقات می که به شدت این افراد توکسیکه به معنی این که به شدت اینا زهری هست سمی هست اگر ما با این چین افراد ارتباط دایم داشته باشیم قطعا ما نیز مثل اونها سمی و توکسیک میشیم و این در سرنوشت ما تاثیر متاسفانه بسیار بسیار منفی خواهد داشت تمو این که اکثر اندیشمندها در علم اجتماعی و روانشناسی چینی نظر را داره که اگر شما قرار باشه یک فرد رو بشناسید کافیست که به اطرافیان و دوستان و دائری از دوستان اون نگاه بکنید بعد شخصیت طرف مقابل به سادگی قابل شناسایی و تحلیل هست یعنی نیازی است که شما یک فرد رو حتما بشناسید چند سال با اون زندگی کرده باشید یا باش صحبت کرده باشید کافیست آن فرد دوستان آن فرد را شناسایی بکنید ببینید ما دوستان آن فرد مدنظر چین نوع افراد هستند با توجه به دایره دوستانش براحتی میشه شناخت که فرد مدنظر از نظر شخصیتی و از نظر اجتماعی و از نظر علم و سواد و دانش چه سطح هستند و چی برخوردی با چنین فرد باید صورت بگیره پس ما خیلی مهمه که دایره دوستان و دایره ارتباط من را در حقیقت مشخص بکنیم در اجتماعی با چه افرادی ارتباط داشته باشیم امکان داره حتی فامیل های نزدیک ما هم در دایره افراد مرتبط با ما نباشه چون امکان داره شما در یک خانواده زندگی بکنید در یک فامیلی زندگی بکنید که متشکل از اقوام زیاده است و این اقوام متشکل از افراد هستن که این افراد امکان داره افراد مناسب حال شما نباشه امکان داره افراد به شدد افراد سمی باشه که توصیه اکید من و سایر دانشمندان علم روان شناسی و در حق اجتماعی اینه که شما به شدت از اونها فاصله بگیرید اگر فاصله نگیرید به طولانی مدت شما جزی از افراد سمی که با در ارتباط هستید میشید یعنی به شکل ناخودآگاه شخصیت شما به سمت سمی شدن پیش میره پس امکان داره این افراد این افرادی که ما ازش صحبت میکنیم یا دایره ارتباط ما دایره ارتباط ما امکان داره حتی شامل پدر مادرم باشه خب، چنانچه ما در متون دینی در متون اسلامی داریم که بسیار توصیه اکید شده به داشتن سل رحم دا برقرار کردن ارتباط بین اقوام و خیشاوندان ولی در علم روانشناسی ما دایره ما باید غربال شده باشد کما این که ما در خود متون دینی نسبت به مسائل در حقیقت احراس کردن بسیار آیات متعددی در قرآن کریم داریم مثلا شما شما حتما شنیدید راجع به ابو سفیان راجع به سایر افرادی که در پیامبر را خیلی در دوران رسالتش در مکه عذیت میکردند خدای متعال به پیامبر بارها آیهی نازل کردن نسبت به احراز که از اونها فاصله بگیر از اونها بگذر اونا از با دیگه با اونها نباش از اون رای را که ها میره مثل ابولهب شما لطفا به او را نرین از اونها کاملا احراز بکنید ما آیات متعددی داریم برای ما همچنان که در قرآن راجع به سل رحم صحبت شده در مقابل آن راجع به احراز هم صحبت شده احراز یعنی پرهز بکن از افرادی که سمی هست رفته آمد نکنید با افرادی که سمی هست و میفهمید که شما را در طولانی مدت عذیت میکنه یا ارتباط داشتن با چین افرادی باعث آزار و اذیتتان میشه چی این باعث آزار؟ جسمی باشد چی روحی باشد چی اخروی باشه و چی دنیوی شما حق درقت برقرار کردن ارتباط با چین افراد رو ندارید چرا ندارید؟ چون ما در اسلام چیزی داریم به اسم حرام حرام چیزی هست که به ما، به جسم ما به عقل ما صدمه وارد بکنه مثلا مثالی که در این مورد میشه زد شرابه چرا شراب در اسلام حرامه؟ به دلیلی که عقل ما را زایل میکنه بعد به دلیلی که زرر به عقل و جسم ما وارد میکنه پس هر فردی که ما با او در ارتباط باشیم و اون فرد در اجتماع در حقت ضرر جسمی روحی روانی به ما وارد بکنه ارتباط داشتن با چین افراد کاملا کاملا در حقیقت واجب است یا فرض است که قط بشود و شما از آنها احراز بکنید پس ما چطور میشه سرنوشت ما رقم بزنیم با احراز کردن از بدیها، ما جایی که شما میبینید بد افراد بد و سمی هست احراز بکنید در اونجا نباشید ما حتی در متون اسلامی به شدت به مهاجرت در صورتی که شما نیاز در مهاجرت مهاجرت از یک شهری به یک شهری از یک کشور به یک کشوری انجام بدهد که باعث رونق اقتصادی شما باشه باعث حفظ دین شما باشه باعث حفظ شخصیت و حفظ و ناموس شما باشه به مسلمان ها در حقت توصیه اکید شده و او رو فرض و واجب دانسته بلند ما با احراز کردن از بدی هایی که در اجتماع در صد ما قرار میگیره به راحتی سرنوشت خود ما را در دست میگیریم و بر باب سرنوشت خود ما میشیم و زندگی مان را آنطوری که دوست داریم رقم میزنیم و بر اساس تصمیم هایی که در زندگی اجتماعی مان میگیریم از پس بلنده های اجتماع که ناگذیر با آنها مواجه میشیم گهگاهی راحتی میگذریم پس ما با احراس کردن در اجتماع راحتی قادر هستیم که در حقیقت تأثیرات منفی اجتماع و افراد سمی را در اجتماع از خودمان دور بکنیم انشاءالله در بحث بعدی به امید خدا راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنیم و مسئله را باز, باز خواهیم کرد و در بخش های مختلف بحث در دستگیری سرنوشت رو انشالله ادامه خواهیم داد لطفا از وبسایت من دیدن بکنید www.newit.win وین به معنی پسوندی وین به معنی برنده به جای دادکام اونجا نوشته ها مقالات و در حقیقت که من دارم رو انشالله ببینید و بشنوید به امید پیروزی یکا یک شما